بسم الله الرحمن الرحیم بنام الله که بخششان دفاع با رحمت است وینلی المطافین الذين اِذا اقتلوا على الناس يستوفون واقع بر کم تروشان همان هایی که وقتی از مردم برای خود پیمانه میگیرند آن را پر و کامل میستانند و اذا کانوهم او وزنهم یخسرون بنگامی که برای مردم پیمانه یا وزن میکنند کم میگذارند. الا یعلموا الائکه انهم مبعوثون آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته خواهند شد در آن روز بزرگ؟ الناس همان روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان می کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین <است جی> <وما انشن> این نیست که پنداشتند بیشک نامه اعمال مجرمان در سجین است و تو چه دانی که سجین چیست کتاب <سطور> مرگون کتابی نوشته شده است ویلون یوم ای ظلی المکذبین یکذبون بیوم الدین پس در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان حقایق همان کسانی که روز قیامت را انکار کردن و ما یکذب بهی ایلا معتد بدانید که فقط تجاوزکاران گناهکار قیامت را انکار میکنن إذا تکلا علیه آیاتنا قال همان کسانی که چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند این همان افثانی پیشینیانه است هرگز چون نیست بلکه دستاورد پلیدشان چون زنگاری بر دیواره قلبشان نشسته است و حقایق را درک نمی کنند این چونین نیست که پنداشتند آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند سرانجام به جهنم وارد می شود. هُُمَّ يقال هذا الذي كنتم به تكذبون سپس به آنها گفته شود این همان چیزی است که میکردید. كلا این کارش می کردید إِ كتاب برارلَ في عِلي وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ كِتَابٌ مَوْقُوعٌ نیست نامه اعمال نیکان در علیین است و تو چه دانی که علیین کدام است کتابی نوشته شده است یَشهدُ المقربون که فقط مقربان درگاه الهی در آن می‌نگرند <تصفيق> الابرار بیشک نیکان لفي على در نعمتند بر تختها تكیه زده و مینگرند تعرف فی در چهرههایشان شادابی برخورداری از نعمت را میبینیم از شرابی خالص و در بسته سیراب میشبن. مهر درهای آن شراب از مشک است و مشتاقان برای رسیدن به آن بر یکدیگر پیشی می گیرند. و تمام شراب از تسنیم است. آیین که فقط مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. این الذین در دنیا گناهکاران به اهل ایمان می خندیدند و اذا يتغامزون و هرگاه از کنار آنها میگذشتند با حرکت چشم عبرو مسخرشان میکردند. و ابرو مسخره شان می کردند و الى اهلهم قلب و انگامی که به سوی خانه لاده خود می شادمان ره سپار می شدند و, اذا قانو اولا و که اهل ایمان را میدیدند، میگفتند اینها همه گمراهند وَمَا يُنْسَنُّ عَلَيْهِمْ حافظين. حالان که آنها مأمور به مراقبت از اعمال اهل ایمان نبودند فَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ يضحكون. اما امروز اهل ایمان بر کافران می‌خندند عَلَى الْأَرْضِ يَظْهَرُونَ برتاخ داده و مینگرند نگرند هل فهمی ما کافران پاداش عملکردشان را گرفتن راست گفت خداوند بلند مرتبه و از قاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه وآلہ وسلم